پس هزار یک شب شب سیونه‌هم چون خبر به والی رسید والی سوار شد و بیلداران با خود برداشته در پی من روان شد و من خاک بر سر کنان فریاد واسه یدا می زدم تا اینکه به باغ اندر شدم خاجم چون دید که من بر سر و سینه همی زنم و واسه یدتی گویم مبهود شد و گونش زرد گردید گفت ای hey کافور این چه حالت است؟ گفتم چون به خانه رفتم دیدم که دیوار خانه خراب شده و خاتون و فرزندانت در زیر خاک مانده اند خاجه گفت خاتون خلاص نشد گفتم نخوست خاتون بمرد خاجه گفت دختر کوچک من خلاص نگشت گفتم، لا والله خاجه گفت، از تر سواری من چه شد؟ گفتم، دیوار خانه و طویله هم از هم فرو ریختند و هر چیز که به خانه و طویله بود به زیر خاک اندر بماندند و از آدمیان و گوسفندان و مرغان چیزی زنده نماندند و همگی پاره گوشت شدند اکنون از خانه و خانگیان هیچ بر جان نمانده و فندان و مرغان و چهار پایان را گربه و سگان پاک خوردند خاجه چون سخنان من بشنید جهان به چشمش سیاه شد خودداری نتوانست کرد و بر پای خواستن نتوانست نتوانست های خیشتن بدرید و ریش بکند و دستار بیانداخت و تپانچه بر سر و روی خیشتن همیزد تا اینکه خون از سر و رویش برفت و فریاد و ولدا و وا برکشیده گفت ای یاران تا کنون چنین مصیبت را جزمن که دیده بازرگانان نیز که یاران او بودند، فریاد برکشیدند و گریستند و خاجمع از باغ به در آمد و از بس که تپانچه بر سر و روی خود زده بود، راه رفتن نمیتوانست چون بازرگانان از باغ بر اثر خاجه بیرون شدند، گردی بدیدند و فریادها بشنیدند. چون نیک نگریستند، گروهی دیدند که همی آیند و والی شهر در میان ایشان سوار است و پیوندان بازرگان خروشان و گریان بیچادر و روبنده همی آیند. چون نزدیک شدند نخستین کس که خاجه او را دید خاتون و فرزندانش بودند. از دیدن ایشان شگفت مانده بخندید و حالت باز پرسید. و ایشان نیز چون خاجه را بدیدند گفتند شکر خدا را که تو را زنده دیدیم. پس فرزندان بازرگان خیشتن را در پای پدر بینداختند، و در دامنش آویختند و گفتند بر تو و یاران تو از افتادن دیوار چه رسید؟ خاجه با ایشان گفت از خرابی خانه بر شما چه رفت؟ ایشان گفتند همت خدای را تندرست هستیم و به خانه ما نیز آسیبی نرسیده ولاکن، قلام تو کافور سر برهنه و جام دریده به خانه آمد و واسه همی گفت. ما از سبب باز پرسیدیم. گفت خاجه در باغ به پای دیواری نشسته بود. دیوار بیفتاد و بمرد. خاجه گفت سبحان الله کافور همین ساعت خروشان و فریاد کنان واسه آمد من از سبب باز پرسیدم گفت خاتون و فرزندانش جملگی بمردند. بانگاه نگاه کرد دید که دستار در سر ندارم و گریان و خروشان خاک بر سر میکنم. کنم بانگ بر من زد و گفت ای ناپاک ای پلیدک سیاه این چه حادثه است بر برپا کرده ای به خدا سوگند پوست از تو بازگیرم و گوشت از استخوان تو جدا سازم گفتم خدا سوگند هیچ کارد به من نتوانی کرد که تو برا با همین عیب خریده ای و جمعی گواه منند که تو دانسته ای که من در سالی یک بار دروغ میگویم و اینکه گفتم نیمه دروغ بود چون سال به آخر رسد نیمه دیگر بخواهم گفت خاجه بانگ بر من زد که ای پست ترین غلامان این همه آشوب که کردی هنوز نیمه دروغ است و نیمه دیگر هم خواهی گفت از من دور شو که تو را آزاد کردم گفتم اگر تو آزادم کنی نخواهم رفت تا سال به انجام رسد و نیمه دیگر دروغ بگویم چون دروغ تمام گویم آنگاه مرا به بازار برده به هر قیمتی که خریده ای و هر عیب که شرط کرده ای باز به همان قیمت و همان شرط بفروش و مرا آزاد مکن که صنعتی ندارم تا معاش بگذرانم و این مسئله شرعیه بود که با تو گفتم و فقیهان نیز در باب آزادی بندگان این را یاد کرده اند القصه، ما به گفتگو اندر بودیم که والی با جماعت بسیار گروه گروه برسیدند. خواجم نزد والی رفته ماجرا را بیان کرد و گفت این پلیدک میگوید اینکه گفتم نیمه دروغ است. چون مردم این را بشنیدند از این دروغ در عجب ماندند و دشنام به من داده نفرین همی کردند. ولی من ایستاده خندان بودم و میگفتم که خاجه مرا چگونه تواند کشت که مرا با این عیب خریده است. چون خاجه به خانه باز آمد سرای خود ویران یافت و بیشتر آن خانه را من خراب کرده و بس چیزهای قیمتی که شکسته بودم. زن خاجه با او گفت که فلان ظرف و فلان چینی را کافور شکسته خاجه خشمناک شد و گفت تا کنون چنین تخمه ناپاک ندیده بودم و هنوز نیمه دروغ گفته اگر نیمه دیگر نیز بگوید چگونه خواهد شدن؟ یقین است در آن نیمه دیگر جنگ میان مردم شهر و یا جنگ میان دو شهر خواهد بود پس از آن خواجه از قایت خشم شکایت پیش والی برد و او مرا شکنجه کرد و چندان تازیانه به من زد که از خیش برفتم آنگاه مرا پیش دلاک برد و هنوز به خود نیامده بودم که آلت مردی من ببریدند و داغها بر تن من نهادند. چون به خود آمدم خاجه با من گفت چنان که تو بهترین مالهای مرا تلف کردی من نیز به گمان تو بهترین اعضای تو را ببریدم. آنگاه مرا به دلال داده به قیمت گران بفروخت و من پیوسته فتنه‌ها برپا می‌کردم و به هر جایی که می‌رفتم آشوب همی انداختم و این خواجه به آن خواجه همی فروخت تا اینکه خلیفه مرا بخرید پس از آن دروغ نگفته و آشوب نکردم و خلیفه از من راضی است دو قلام به سخن کافور بخندیدند و گفتند تو پلید ابن پلید هستی آنگاه قلام سیومین را گفتند تو نیز حکایت خیش بیان کن گفت ای زادگان، این که شما گفتید طرف حدیثی نبود سبب برید شدن آلت مردی من بس ترفه و عجیب است. و حکایت من بس دراز است و اکنون وقت حدیث گفتن نیست که با امداد نزدیک است و چنین صندوق به دزدی آورده ایم بسا هست صبح بدمد و ما به سبب این صندوق در میان مردم رسوا شویم و به کشتن رویم شما همین ساعت برخیزید تا کارها به انجام رسانیم و از شغل خیشتن فارغ شویم آنگاه سبب بریده شدن آلت خود بازگویم پس شام پیش گرفته به میان چهار گور جایی از بحر صندوق بکندند و صندوق گذاشته خاک بر وی ریختند و از مقبره بیرون رفتند و از چشم قانم بن ایوب ناپدید گشتند چون مقام از ایشان خالی شد و قانم تنها ماند خاطرش بدان چه در صندوق بود مشغول شد و با خود می گفت آیا به صندوق اندر چیست پس صبر کرد تا فجر بدمید و جهان روشن گردید آنم از درخت به زیر آمد و خاک از روی صندوق دور همی کرد تا صندوق پدیدار شد. پس صندوق به در آورد و سنگی گرفته قفل آن را بشکست و صندوق باز کرد. دختری ماه روی به صندوق اندر بیهوش افتاده دید که جامعه فاخر و زیورهای زرین و الاده های مرسع داشت و گوهرهای چند به قلاده اندر بود که یکی از آنها در قیمت برابر گنج خسروانی بود پس قانم آن زیبا سنم را از صندوق به و بر پشت بخوابانید. چون نسیم برو او بوزید و هوا به مقصش فرو شد اتسه زد و پاری بنگ از گلویش به در آمد ولی چنان بنگ بود که اگر پیل آن را بخوردی دو شبان روز بیخود افتادی چون آن زهر جبین چشم باز کرد گفت وای بر من مرا از میان قصرها و قرفه ها و باغ ها دینجا که چه آورد و به میان چهارگور چرا بگذاشت قانم بن ایوب گفت ای خاتون نه قصرها ها ام و نه قرفه ها و نه تو را به میان گورها ها ام ولیکن خدای تعالی مرا به دینجا آورد تا تو را نجات دهم آن ماه روی گفت که مرا به دینجا آورد قانم گفت ای خاتون سهتن خاج سرایان سیاه تو را به صندوق اندر بیاوردند پس ماجرا بیان کرد و از حکایت پریپیکر باز پرسید دختر گفت ای جوان شکر خدای را که مرا به چونتو نیکو خسال برسانید اکنون برخیز و مرا در صندوق نه و در سر راه بیست و چهار پایی کرایه کرده صندوق بر آن بار کن و به منزل خیش برسان که این کار بر تو سودها بخشد و عاقبت نیکو خواهد داشت و چون به خانه تو برسم حکایت خود بازگویم گویم قانم بن ایوب شادمان شد و از مقبره به در آمده از مردی از تری کرایه کرد و به مقبره بیاورد دختر به صندوق گذاشته صندوق بر استر بنهاد چون دختر بسی خداوند حسن بود و زر و گوهر بیاندازه داشت قانم شادان و فرحناک میرفت و صندوق همی برد تا به خانه خیش برسید صندوق برآورده بگشود سبد اینجا رسید بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فروب است